از خاطر خاطر رو را تغییر کنم به خاطر بودم با اون رو نقاب قاب بزنم مورد مادرش اون چپ کنم همینجا دارم صداقت رو کنار میذارم من اینجا دارم کار رو خراب بکنم. اقاق منو کسی قبول کردم و نه هر کسی یکی بود منو میفهمید خوب بفهمم می و من از دستش دارم دختری که من باش میتونم به سازم بعد چی چ میدانم فیزیک آن و اینجا چیزا باشه تا بفهمم وقتانه داخل... اونم گیافه شو دوست در داشتم که نداشتم کلا یه رامه تنیاز به شالاتان بازی دانه از یک طرفت یعنی در در حال و ده تا هدی اوکیه ولی اونی که طرف و رو دستا بی به اهدافش از بعضی خواسته آیا خودشش پوشی میکنه و نقاب میزنه و پیش میره می میره من هرگز نخواستم اون جانتان باشم خودم بودم و خودم موندم حتی اگر زرگیره بسیار سنیار از سیکس رو با پیاده کردن جدی طرف تو افرین قرارت دست هایم پشیمون نیستم اگر کسی باشه که پبینه میبینه اگر هم نباشه پاس مهم نیست دقل با خودم اصابم با که کپا رو شیرین یکی نزاشتم و پاعث سربان رو یه نم نزد دل بشته شدم من پنجاه تر سر برای خود